جلسه کلاه سبز توی ایستگاه اتوبوس روبروی ساختمان وزارتخانه منتظر بود مردی عینکی و پالتوپوش از اتومبیل پیاده شد همدیگر را بغل کرد پیدا بود دوستان قدیمی که خیلی وقت از همدیگر را ندیدند بعد از آنکه صدای خاص کسانی را درآوردند که بعد از مدت‌ها کسی را می‌بینند شروع کردن به چاخ سلامتی چطوری؟ دیگه چطوری؟ بچه ها چطورن؟ چه خبرا؟ در جواب این سآل ها هم عبارت های همیشگی ردیف شد خوبم، الحمدلله الله، شکر، سلامتی اینها هم که تمام شد مرد عینکی و پالت و پوش خواست دوست قدیمش را به خانهش ببرد دوستش گفت باشه، بریم، اما منتظر یه دوست هستم اونم بیاد، با هم بریم مرد پالتو گفت اینجا قرار دارین با هم اومدیم گفت تو وزارتخونه یه کاری داره رفته تو الاناست که پیداش بشه مرد پالتو پوش گفت اصلا منتظر نمونیم نمیاد واسه چی نمیاد میاد نمیاد دوست قدیم مرد پالتو پوش عصبانی شد مگه میشناسیش نه نمیشناسمش اما نمیاد واسه اینکه بفهمی یکی که, که نمیشناسیش نمیاد لازم نیست حتما بشناسیش که اگه میشه نیاد برادر ببین از این در رفتو دلیلی نداره منو اینجا قال بزاره ای بابا انگار متوجه نشدی. بگو ببینم از دره اداره دولتی تو رف یا نه میاد میاد الان پیداش میشه هر جا باشه میاد نمیاد تا اداره ها تعطیل نشن نمیاد نمیتونه بیاد از اوناش نیست که تو میشناسی هر کی میخواد باشه نمیاد یعنی میگم من اینجا منتظر نشستم اون وقت اون يا آشناشو میبینه و سرش به اون گرم میشه. راستش اون تو آنکارا اصلا آشنا نداره. آدم پرچونه ای هم نیست. مگه واسه یه کاری نرفته تو؟ بله، یه کار تموم شده، امضا شده، یه سند که کارش تموم شده. از دبیرخونه میگیره و میاد بیرون. الان اصلا مطلبو گفتی. اگه اینجور باشه که اصلا نمیاد. باید تا موقعی که اداره تعطیل میشه منتظر بمونی. بابا میگم یه کار تموم شده است. همینجا از دبیرخونه سند و میگیره و میاد نمیاد برادر دست خودش که نیست یعنی میگی کارو کشش میدن؟ اما کار تموم شده است تازه اگه کار هم پیدا کنه منو منتظر نمیذاره میاد بیرون به جون عزیزت به جون خودم نمیاد یالا رابیو بریم نه بابا سشته پس بزار وسط تعریف کنم چی سرم اومده که این حرفو میزنم چند وقت پیش توی ادارهی کار داشتم البته همچی کاری هم نبود. برادر زنم اونجا کارمنده رفتم پیشش بهش گفتم غروب بیان خونه ما بعدش اومدم بیرون داشتم از راه پله میرفتم پایین که احساس کردم باد به سرم میخوره فوری فهمیدم کلاهمو فراموش کردم موقعی که وارد اتاق برادر زنم میشدم کلاه و پالتومو به رخت‌آویز توی راه رو آویزون کرده بودم پالتو تنم بودم اما از کلاه خبری نبود به خدا هنوز نمیشد بگی از در رفتم بیرون یعنی دو تا پله پایین رفته بودم که فوری برگشتم دویدم طرف رخت توی راه رو دیدم کلا نیست خدایا حالا چیکار کنم من بی کلا نمیتونم بمونم فوری سرما میخورم کلا هم از اون کلاهای خوب بود اصل ایتالیا الان از اون کلاها پیدا نمیشه شوهر خالم از ایتالیا وستن سوقاتی آورده بود سی سر لیره هم بدی لنگه اون کلاها پیدا نمیکنی تازه یه هفته بود سرم بیزاشتمش شروع کردم توی راه رو بالا پایین دویدن. داد میزدم کلاه، وای کلاه من کجاست؟ راه رو پر آدمهایی بود که کاغذ به دست، دنبال کاری اومده بودند. وقتی توی راه رو میدویدم و داد میزدم کلاه کلاه، اونا به هم میخندیدن. از قدیم گفتن کلاه گم نکرده، درد کلاه گم کرده کجا دارد. تازه سرما هم میخورم. توی خونه هم توی رخت خواب هم که باشم یه عرقچین حتما سرم میذارم ولا میچام؟ خلاصه همینجور که توی راهرو میدادیدم یه دفعه عسه شروع شد همه می خندیددن هیچکی نمیفهم آدم چه دردی داره. میدونم خنده داره که یکی تو راه دارره دولتی عطسه کنون به دو داد بزنه کلاه کلاه. اما من حال خندیدن نداشتم رفتم تو اتاقه بردر زنم و بعد از عطع شدید داد زدم دستم به دامنت برادر زنجان. ببین چه بلایی سر اومده. گلام از دست رفت برادر در زنم سعی کرد آرومم کنه. گفت حالا وایستا نگران نباش پیداش میکنیم رئیس برادر زنم عصبانی شد آقای محترم اینجا داره دولتیه هیچ چیزی اینجا گم نمیشه مگه داره های دولتی رو نمیدونم درسته هیچ چیزی گم نمیشه اما وقتی دنبالش بگردی پیدا هم نمیشه خلاصه دوتایی با برادرزنم یواشکی رفتیم تو راه رو. برادر زنم آبدارچی رو صدا کرد پرسید کلایی که اینجا بود چی شد؟ چی گفت یه کلاه سبز بود؟ داد زدم آره سبز بود کرک داشت؟ آره کرک داشت بزرگ بود؟ آره بزرگ بود روبانش سیاه بود؟ آره روبانش سیاه بود همون موقع رئیس بردر هم اومده بود توی راه رو یه بار دیگه بهم اخم و تخم کرد دیدی حضرت آقا اینجا اداره دولتیه اینجا چیزی گم نمیشه؟ کلاه شما که چیزی نیست خزانه بانک مرکزی هم باشه کسی نگاهش نمیکنه جان من مگه ما گفتیم کسی نگاهش میکنه این حرفا دیگه از کجا درآوردید ما چیزی نمیخوایم که فقط کلاهمون رو میخایم آبدارچی شمردن مشخصات و کلاه منو ادامه داد کنارش گرد بود آره گرد بود روبه بالا جمع میشد بله همون جوری بود دو تا هم سوراخ هواکش داشت چی گفتم این کلاه ما رو خوب توصیف کردی حالا جاشم بگو کجاست. چی گفت: من فکر کردم کلا بی صاحبه، ورش داشتم و بردم و به وجدنی بیگ تحویل دادم. دو طرف اتاق وجدانی بیگ. دستم به دامنت. حالا عتصام گرفته نمیذاره دو کلام حرف بزنم. از عتصام دیوارهای اداره گروب گروب صدا میده. قربونش برم این اداره ها رو هم طوری میسازن که اگه اینجا پچ پچ کنی صدا تو دیوارها میپیچه و میپیچه مثل بهمن بزرگ میشه و همه اتاقا رو میگرده. ووش بیک از دختر ماشین نویس پرسید صورت جلسه کلای پیدا شده کجاست؟ دختر گفت فرستادم دبیرخونه. فوری گفتم آقا دستم به مگه کلاه من صورت جلسهام داره؟ این چه کاریه؟ ووش بیک یک عصبانی شد. اگه با دو تا دستتون به کلهاتون نباشین واسه ما دردسر درست میکنید تازه میپرسید مگه صورت جلسه داره؟ یه کلاییه که تو راه رو پیدا شده صورت نکنیم چیکار کنیم؟ به طرف دختر نویس برگشتم. رو خدا دخترم عدسه شدیدم همه کاغزای روی میز دختره را برد دختره که گرگش گرفته بود گفت من از طب حالا نشسته روی کاغزا رو مرتب کردم شما همه رو درو کردین حالا چیکار کنم هرکی کی از راه میرسه به خاطر عدسه یه چیزی بارم میکنه ای بابا ببین دخترم عدسه یه چیزی خارج از اراده انسان یه چیزی مثل فرمان پادشاه کی میتونه جلو عدسه وایسته خب دستمال بگیر جلو دماغت جانه من، مگه محلت میده آدم دستمانشو در بیاره، مگه عدسه مثل ارباب روجویه که چرا در وامی در میزنه، مثل بازرس ناشی یه دفعه از را میرسه. دختر ماشین نویس میون کاغذ و گشت و صورت جرسه کلاه پیدا کرد. یه ورق کاغذ صورتی پرپری بود. اصلش رو به کلاه سنجاخ کرده بودن و فرستاده بودن. نسخه دومش مونده بود. زیر چشمی کمی از صورت جلسه رو خوندم. موزو... کلاه سبز رنگ. کرکدار با روبان سیاه و دو سوراخ هواکش که در راه رو پیدا شده. دختر ماشین روی تیکه کاغذ شماره نوشت و به امدامد. برین دبیرخونه دنبالش بگردین. دویدم رفتم پیش کارمنده دبیرخونه. دستان به دامند. این کلاه من پیش شماست. شماره شنده. پنج و نو. دفتر سبت و گشت و گشت. آخر سر گفت. موضوش اینه در باب پرداخت عوارزه دیر کرد. نه بابا نا بابوچاهوارزیک کدوم دیر کرد کلاه من موضوش همون کلاه سبز و کرکدار که دو تا سوراخ هواکش داره مگه من از سوراخ کلاه تو خبر دارم شمارهشو بگو گفتم که پنجانو شماره پنجانو پرداخت عوارض دیر کرده ای بابا مگه حضرت عالی از من نمره ها نپرسیدین ببخشید مثل اینکه اشتباهی متوجه شدم اینهاش اینم شماره سوراخ جلسه دوباره دفتر زیرو رو کرد اینه کلاه سبز رنگ کرکدار با روبان سیاه و دو سورخ هواکش بله خودش خدا خیرت بده حالا پیداش کردیم یا نه کارمند ثبت گفت برای دستور بایگانی فرستادنش پیش مدیر اداره رفتم پیش برادر زنم یا آدم با سراغ نداری بیاد واسطه بشه بلکه بتونیم رو نجات بدیم منو پیش مدیر کول برد مدیر کول یه زنگ و فشار داد و مدیر اداره رو صدا زد چرا کلاه این آقا بهش نمیدین مدیر اداره گفت کی نمیده؟ ما کللا اونو میخوام چیکار؟ یه کلاه نمره پنجانو؟ توی این اداره واسه سر همه گشاده هرکی سرش بذاره تا گوشاش پایین میاد داشت به کلام توهین میکرد. یه عسه کردم اگه سرم به طرف دیوار بر نگردونده بودم هرچی کاغست تو اتاق بود بال در می آورد و پرواز میکرد مدیر اداره توضیح داد یه کلاه واسه اون آوردن صورت جلسه کردیم که پیدا شده صورت جلسه رو بهش سنجاق کردیم و فرستادیم بخش دو مدیر کل گفت: برید کلاهتون رو بگیرید آقا. دستم به دامنتون جرا مدیر کل. کلاه کی میده؟ نمیدن که. مدیر اداره گفت: کار از دست ما خارج شده. ما هیچ کاری رو معطل نمیکنیم فوری انجامش میدیم و میفرستیم قسمت بعدی. اگه کلاه وطنی بود از خیرش میگذشتم اما چیکار کنم که کلاه اصل ایتالیایی بود. سوغاتی شوهرخالهام. دویست لیره هم بدین لنگاشو پیدا میکنید. رفتم بخش دو. جلوی در پر آدم بود. نمیشد بری داخل. همه از همدیگه میپرسیدن چه مشکلی داری؟ مشکل منم کلا. یکی که جلو بود گفت خیلی وقت پی این کارین؟ گفتم از صبح. بعدش ماجراهایی که سرم اومده بود وسش تعریف کردم. مرده عثوانی شد گفت برو ببینم بابا. شش ماه میامو میریم. هنوز پرونده به جریان نیفتاده. اون وقت پرونده شما رو فوری به جریان انداختن؟ یکی دیگه گفت معلومه آدم خوش هستین. بغل گفت کدوم شانسته داشت معلوم نیست از کجا پارتی جور کرده کارشو به این سرعت را انداختن اونجا بود که فهمیدم به جریان افتادن کلا هم یه جوور خوششانسه بعد از مدتی تونستم به بخش دو داخل بشم اما از کلا خبری نبود اونها هم به جای دیگه ای فرستاده بودنش با اونکه عصبانی شده بودم به روی خودم نیوردم گفتم مگه چی چی داشت که باعث فورا به جای دیگه میفرستادینش؟ کارمندی که اونجا نشسته بود گفت عجب؟ کارو یواش انجام بدی خوششون نمیاد. تند انجام بدی بازم خوششون نمیاد. کاش که کلاه منو یکمی یک منتظر نگر میدشتی. آقا اینجا مگه اتاق انتظاره؟ دیدی بچه کلاه یکی و میقاپن و دستش بازی میکنن. اونی هم که کلاهش داره از این دست به اون دست رو هوا پرواز میکنه و میره. اون وسط گیج و منگ میگرده. و از منم اونجور شده بود. هر کاری میکردم نمیتونستم بگیرم. روال اداری کلا هم چنان با سرعت طی میشد که تا پامو توی اتاق میذاشتم کلا میرفت توی اتاق دیگه خلاصش این که بعد از ده روز دوندگی تونستم کلاها تو انبار گیر بیارم حالا هم که گیرش آورده بودم انباردار به نمیدادش میگفت این کار مسئولیت داره کجا من اون کلا شماست مشخصات کلامو بهش توضیح میدادم نمرش 59ه هر کس به جز من سرش بزاره واسش گشاده رنگش هم سبزه. تو دنیا یک کلاه سبز هست اونم مال شماست، کرک داره. کلاه کرک دار اونقدر زیاده که ببینم توش عکستون هست، دو تا هم سوراخ هواکش داره. حرفاتون به صورت جلسه میخوره، اما اگه فردا یکی پیدا بشه بگه کلاه مال منه، اون وقت چی؟ آخرش تمصن بهش بقبولونم که کلاه مال منه. دوباره صورت جلسه نوشتن، من هم امزاش کردم. گفتم دیگه کلاه همو میدن. اما مگه یارو دست بردار بود. این دفعه گفت کارت شناساییتون لطفا. چی؟ کارت شناسایی؟ همراه نیست. بدون کارت شناسایی نمیشه. نمیتونیم کلاهو بدیم. اینو که کلاه مال منه ثابت کرده بودم اما نمیتونستم ثابت کنم که من خودم هم دویدم رفتم خونه کارت شناسایی شناساییمو آوردم. برادر زنمم هم کمکم هم کرد. خلاص کلاهو به دادن. دو تا سوراخ هواکش کلاه شده بود 200 تا. از بس جلسه به کلاس سنجاق کرده بودن کلاه سوراخ سوراخ شده بود. کولو گرفتم اما نتونستم سرم بذارمش تو چی میگی داداش هنوز دو دقیقه نگذشته و بر گاشتم که به رختآویز بود بردارم دیگه نتونستم از اونجا بیرون بیام حالا دوست تو چطوری میخواد بیرون بیاد اما آخه ما داره که اون حاضر آماده است مرد پالتو پوش عینک گفت حاضرم که باشه زودتر از ده روز نمیتونه بگیردش دوستش به ساعتش نگاه کرد گفت اه, اه داره هم که الان تعطیل میشه مرد پالتو پوش گفت الان میتونیم منتظرش بمونیم الان است که پیداش بشه چی رفته بود تو؟ ساعت دو کارمنتو از در اداره بیرون آمد مردی که منتظرش بودند تقریبا آخر همه گفت کارم مون واسه فردا.